اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من فَأَنَّ فأن لله خمسه وللرسول فأن لله خمسه وللرسول ولذ القربا واليتاما والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوما الفرقان يوما التقى الجمع والله على كل شيء قدير فبدانيد کہ هر گون یک پنجمش برای خدا و برای پیام بر و برای خیشان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است. اگر به خدا و آنچه بر بربنده خود در روز فرقان روز برخورد دو گروه نازل کردین ایمان آورده اید و خداوند بر هر چیز تواناست.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 لیهلی که من هلک عن بینه و یحیامن حی عن بینه و این الله آنگاه که شما به کناری نزدیک تر بودید و آنها به کناری دورتر بودند و کاروان قریش پایین تر از شما بود و اگر با یکدیگر دیگر وعده می‌گذاشتید، قطعا در انجام وعده خود اختلاف می ولی خداوند بدون میعاد شما را جمع کرد و روبروی یک دیگر قرار داد تا کاری را که می بایست انجام شود به انجام برساند تا آنکه هلاک حلاک می شود از روی دلیل حلاک شود و کسی که زنده می ماند از روی دلیل زنده ماند و همانا خداوند شنبای دانا است از یوری کهم الله فی منامك قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولكن الله سلم اینه علیمون به یاد آور آنگاه که خداوند ادهی آنها را در خوابت به تو اندک نشان داد و اگر زیاد نشان میداد مسلماً سست می, مسلم می شدید و در این کار اختلاف می کردید ولی خداوند شما را از سستی و اختلاف سلامت داشت یگمان او به آنچه در سینه هاست آگاه است و اذ یوریکوهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینهم ویقللکم فی اعینهم ليقضی الله امرا كان مفعولا و الی الله ترجع الامور به یاد آور آنگاه که چون با هم روبرو شدید آنها را به چشم شما کم نشان داد و شما را نیز به چشم آنها کم جلوه داد تا خداوند کاری را که می انجام شود به انجام برساند و همه کارها به خدا بازگردانده می شود یا ایوها الذین آمنوا اذا لقیتم فیعتا فثبتو و اذکروا الله کثیرا لعلكم تفلحون ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که با گروهی از دشمن روبرو شدید پایدار باشید وخدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید وا اطیع الله ورسوله و لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين و خدا و پیام برش را اطاعت کنید و با همدیگر گر نزا نکنید که شوید و قوت شما از میان برود و صبر کنید بیگمان خداوند با صابران است ولا تکونو کلذین خرجو من دیارهم بطرا و رئاء و, عن سبيل الله والله بما يعملون و مانند کسانی نباشید که با سرکشی و خودنمایی به مردم از سرزمین خود مکه بیرون آمدند و مردم را از راه خدا باز می داشتند. وخداوند به آنچه چه میكنند دارد. لهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَفَّ صَاعِقَ وقال, وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ أُمٌّ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنّ و خاف الله و شدید و به یادآور هنگامی را که شیطان اعمال آنها را در نظرشان بیاراست و گفت امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نخواهد شد و من حامی و پناه دهنده شما هستم پس هنگامی که دو گروه روبرو شدند به عقب بازگشت و گفت بیگمان من از شما بیزارم به راستی من چیزی را میبینم که شما نمیبینید همانا من از خدا میترسم و خداوند سخت کیفر است از یقول المنافقون والذین في قلوبهم مرض غر هؤلاء و من یتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم و به یاد آورید هنگامی را که منافقان و آنان که در دلهایشان بیماری است می گفتند اینان را دینشان بفریفته است و هر کس بر خدا توکل کند پس بیگمان خداوند پیروزمند و حکیم است وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ عذاب عَذَابَ و واگر ببینی هنگامی که فرشتگان مرگ جان کافران را میگیرند به صورت و پشت آنها میزنند و میگویند. عذاب سوزنده را بچشید بما کهبیدمت ع و ان الله ليس بظلام این به خاطر کارهایی است که پیش از این فرستاده اید و آنکه خداوند هرگز نسبت به بندگانش ستم روانه می دارد. كذ بآل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شدید العقاب همانند شیوه فرعونیان و کسانی که پیش از آنان بودند به آیات خدا کفر ورزیدند پس خداوند آنها را به کیفر گناهانشان فرو گرفت مسلما خداوند نیرومند و سخت کیفر است. ذَلِكَ بِأَنَّ الله لَمْ يَكُمُ مغيرا مِعْمَتًا اَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وأن الله سميع این بدان خاطر است که خداوند هیچ نعمتی را که بر قومی ارزانی داشت تغییر نمیدهد تا آنکه آنها روش خودشان را تغییر دهند و بیگمان خداوند شنوای داناست کده بی آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بی ربهم فا بذنوبهم هم بی آل فرعون وكل كانوا کانو ظالمین مانند شیوه فرعونیان و کسانی که پیش از آنان بودند آیات پروردگارشان را تقزیب کردند پس آنان را به کیفر گناهانشان هلاک کردیم و فرعونیان را غرق نمودیم و همه آنها ستمکار بودند این شر الدواب به عند الله الذین كفروا فهم لا يؤمنون یقیناً بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کافر شدند پس آنان ایمان نمی آورند عاهدت منهم ثم عهدهم في كل وهم لا یتقون کسانی که با آنها پیمان بستی سپس هر بار پیمان خود را میشکنند و آنها در خیانت و پیمان شکنی از خدا نمیترسند. ترسند فإِنَّمَا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ بهم به بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ پس اگر آنها را در میدان جنگ بیابی چنان به آنان حمله ببر تا کسانی که پشت سر آنها هستند بترسند و باشد که پنگیرند و این ما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم علا این الله لا يحب الخائمی و اگر از خیانت قومی بیم داشتی منصفانه پیمانشان را به سوی آنان بیانداز به راستی که خداوند خائنان را دوست نمیدارد. دارد ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون و کسانی که کافر شدند نپندارند که پیشی گرفتند آنها هرگز ما را ناتوان نخواهند کرد و اعذو لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و و مِنْ من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقون من شیئی فی سبیل الله وفق ایلیکم و لا تظلمون و از نیرو در توان دارید برای مقابل با آنها آماده سازید و همچنین از اسبان بسته ورزید محیا کنید تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید و همچنین دشمنان دیگری غیر از آنها را که شما نمی و خدا آنها را میشناسد بترسانید ور چیزی را که در راه خدا خرج میکنید پاداشش به تمام و کمال به شما داده می شود و به شما ستم نخواهد شد و جنحو للسلم فجنح لها و توکل على الله انه هو السمیع العليم و اگر به صلح مایل شدند پس تو نیز از در صلح درای و بر خدا توکل کن بیگمان او شنوای داناست وئی یوریدن، ائی یخدع کف، الله، هو اللذی ایّدک بِنصری و اگر بخواهند تو را فریب دهند، پس خدا برای تو کافی اوست كه با یاری خود و مؤمنان تو را تأیید و تقویت کرد وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَ انْفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اینه عزیز حکیم و بین دلهای آنها الفت داد اگر تمام آنچه را که در روی زمین است خرج میکردی کردی بین دلهایشان الفت دهی ولی خدا در میان آنها الفت داد همانا او پیروزمند و حکیم است یا ای نبی حسبك الله ومن اتبعک من, من المؤمنین ای پیامبر خداوند تو را و کسانی از مؤمنان را که از تو پیروی کرده اند از شر دشمنان کفایت می‌کند يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين و ان يكن منكم مئه يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون پیامبر مؤمنان را به جنگ تشویق کن اگر بیس نفر برد بار از شما باشند برد 20 نفر از کافران غلبه می کنند و اگر صد نفر از شما باشند بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند غلبه می کنند زیرا آنان گروهی هستند که نمی فهمند الان خفف الله عنکم و علم ان فيكم ضعفا فا مئت صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين اکنون خداوند به شما تخفیف داد و دانست که در شما ناتوانی است. پس اگر صد نفر بردبار از شما باشند بر دویست نفر پیروز میشوند و اگر از شما هزار نفر باشند به فرمان خدا بر دو هزار نفر پیروز خواهند شد و خداوند با سابران است. ما كان لنبی ان يكون له اسرا حتى يسخن في الارض تریدون عرض الدنیا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم هیچ پیامبری را سزاوار نیست که اسیرانی داشته باشد تا آن در زمین کشتار بسیار کند شما متاع دنیا را میخواهید و خداوند سرای آخرت را برای شما میخواهد و خداوند پیروزمند و حکیم است لولا کتاب من الله سبق لمسكم فی ما عذاب عظیم اگر حکم پیشین الهی نبود، و آن در آنچه گرفتید، عذاب بزرگی به شما می رسید. كل مما غنمتم حلال طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحیم. پس از آنچه غنیمت گرفتید حلال و پاکیز بخورید و از خدا بترسید همانا خداوند آمور مهربان است یا ایوهن نبی قل من في ايديكم من الاسرائی فِي لكم والله غفور ای پیامبر به أسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر خداوند خیلی در دلهای شما بداند بهتر از آنچه از شما گرفته شد به شما خواهد داد و شما را می و خداوند آمور مهربان است و این یریدون خیانتک فقد خانوا الله من قبل فأمکن منهم والله علیم حكيم و اگر بخواهند به تو خیانت کنند، پس آنها پیش از این نیز به خدا خیانت کردند، و خداوند تو را بر آنها پیروز گردانید، و خداوند دانای حکیم است. إن الذين <سؤال> آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم <سؤال> وأنفسهم في سبيل <سؤال> الله <سؤال> والذين <سؤال> آووا ونصروا والذين <سؤال> آووا ونفروا أولئك بعضهم أولياء بعض وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَفِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُونَ و این استنصروکم فی الدین النصر الا علا قوم بینکم و بینهم میفاق بما تعملون بصیر همانا کسانی که ایمان و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانی که ایشان را پناه دادند و یاری نمودند اینان یارانی یکدیگرند و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکرده اند شما هیچ گونه دوستی و مسئولیتی در برابر آنها ندارید تا آنکه هجرت کنند و اگر در کار دین از شما یاری خواستند پس بر شماست که آنها را یاری کنید مگر بر علیه گروهی که میان شما و آنها است، و خداوند به آنچه می بیناست والذین كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ الا تَفْعَلُوهُ تكن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ و کسانی که کافر شدند دوستار و یاور یکدیگرند اگر شما ای مؤمنان این کار را نکنید فتنه و فساد بزرگی در زمین برپا خواهد شد والذین آمنوا و هاجروا وجاهدوا فی الله والذین آووا و والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق و فكثاري که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند و کسانی که ایشان را پناه دادند و یاری نمودند، اینان مؤمنان حقیقی هستند، برای آنها آمرزش و روزی شایسته خواهد بود. وَالَّذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَائِكَ مِنْكُمْ و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی كتاب الله این الله بكل شیئن علیم و کسانی که بعد از آنها ایمان آوردند و هجرت نمودند و به همراه شما جهاد کردند پس آنان از شما هستند و خیشابندان در کتاب خدا نسبت به یکدیگر سزاوارترند و هم آنها خداوند به همه چیز داناست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم براءت من الله و رسوله الالذین عاهدتم من المشرکین اعلام بیزاری از سوی خدا و پیام برش به کسانی از مشرکان است که با آنها پیمان بستید اید فی الارض اربعت اشهری و و اعلمو انکم غیر معجز الله و الله مخزل کافرین پس چهار ماه مهلت دارید که در زمین سیر کنید و بدانید که شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و همانا خداوند خار و رسوا کننده کافران است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 وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَاین اعلامیست از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر که خداوند و پیام برش از مشرکان بیزارند پس اگر توبه کنید برای شما بهتر است و اگر روی بگردانید، پس بدانید که شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و کسانی که کافر شدند به عذاب درد ناکی بشارده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 مگر کسانی از مشکان که با آنها پیمان بسته اید، آنگاه آنها چیزی از آن در حق شما فروگذار گذار نکردند و کسی را بر علیه شما یاری ندادند، پس پیمان آنها را تا مدت پیمانشان به آخر و اتمام برسانید، همانا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.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 ان پس هنگامی که ما های حرام پایان پذیرفت ما را هر کجا یافتید بکشید و آنها را اسیر بگیرید و آنها را محاصره کنید و در هر کمینگاه بر سر راهشان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند آنها را رها کنید بیگمان خداوند آمردندی مهربان است و این احد من المشرکین استجارك فأجره حتی يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست پس او را پناه بده تا سخن خدا را بشنود سپس او را به محل امنش برسان این بدان سبب است که آنها گروهیاند که نمی دانند کیف <تصفح> عند الله يحب چگونه برای مشکان نزد خدا و نزد رسولش عهد و پیمانی خواهد بود مگر کسانی که نزد مسجد الحرام با آنها پیمان بستید، تا زمانی که بر پیمانشان وفادار ماندند، شما نیز بر سر پیمانتان وفادار باشید، بیگمان خداوند پر هی هی را دوست دارد. کیف و این علیکم لا یرقبو فیکم الا ولا دنمه. یردونکم بی افواههم و قلوبهم و اکثرهم فاسکون. چگونه پیمانی باشد در حالی که اگر بر شما پیرو شوند نخیشاوندی را رعایت میکنند و نه پیمان را شما را با زبانهایشان خوشنود و ولی دلهایشان عبا دارد. و بیشترشان نافرمانند. اشتروا بآیات الله ثمنًا قليلاً فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون آیات خدا را به بهای اندکی فروختند پس مردم را از راه او باز داشتند، آنها کار بدی انجام میدادند لا یرقبون فی مؤمن دمه در باری هیچ فرد مؤمنی خیشاوندی و پیمان را رعایت نمی کنند، و آنان مردمی تجاوز کارند فَإِنْ تَبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ پس اگر توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بدهند برادران دینی شما هستند و ما آیات خود را برای گروهی که می دانند بیان می کنیم و این کسو ایمانهم من بعد عهدهم و فی في فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم و اگر سوگند و پیمان های خود را پس از عهد و پیمان خیش شکستند و در دین شما طعن زدند پس با پیشوایان کفر جنگ کنید زیرا آنها عهد و پیمانی باشد که از کردار خود دست بردارند. الا <سؤال> تقاتلون قوما انكثوا ايمانهم وهم وهم با اخراج رسول و هم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه این کنتم مؤمنین آیا با گروهی که پیمانهای خود را شکستند و قصد اخراج پیام بر کردند نمی جنگید در حالی که آنها نخستین بار جنگ با شما را آغاز کردند آیا از آنها میترسید؟ پس خداوند سزاوار است که از او بترسید اگر ایمان دارید قاتلوهم یعذبهم الله بی ایدیکم و یخزیهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین با آنها بجنگید تا خداوند با دستان شما عذابشان کند و آنان را رسوا سازد و شما را بر آنها پیروزی دهد و سینه گروه مؤمنان را شفا می بخشد. و یذهب به غیر قلوبهم و یتوب الله على من یشاء. و الله حكيم و خشم دلهایشان را از میان میبرد و خداوند توبه هر کس را بخواهد میپذیرد و خداوند دانای حکیم است ام حسبتم ان تترکو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم ي يت... استخدو من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه والله خبیرون بی ما تعملون آیا گمن کردید که به حال خود رها می شوید در حالی که خداوند هنوز کسانی را که از شما جهاد کردند و غیر از الله و رسولش و مؤمنان را همراز خیش نگرفته اند از دیگران مشخص نکرده است و خدابند به آنچه انجام میدهید آگاه است ما کان للمشرکین این یعمروا مساجد الله شاهدین على انفسهم بالکفر اولاقا که اعمالهم و خالدون را سزابار نیست که مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خیش گواهی می دهند آنها اعمالشان نابود شده و در آتش جهنم جاودان خواهند ماند إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى اولائک ان یکونوا من المهتدین مساجد خدا را فقط کسی آباد میکند که به خدا و روز آخرت ایمان آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بدهد و جز از خدا نترسد امید است که اینان از هدایت یافتگان باشند اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن, بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون ذواللام لا آیا آب دادن به حجاج و آباد ساختن مسجد الحرام را همچون عمل کسی که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است برابر میگیرید؟ خیر آنها نزد خداوند برابر نیستند و خدابند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُفِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ تقاویم کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموالشان و جانهایشان در راه خدا جهاد کردند نزد خدا برتر است و آنها همان رستگارانند یوبشرهم ربهم برحمه این هو رضوان و جنات و جنات لهم پروردگارشان آنها را به رحمتی از نزد خود و خوشنودی خیش و به باغهایی از بهشت که در آن نعمت‌های جاودانه دارند بشارت می‌دهد خالدین فیها ابدا این الله عنده اجر عظیم هموار دران جاو دانند بیگمان اجر و پاداش بزرگ نزد خداوند است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 وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ای کسانی که ایمان آورده اید پدران خود و برادران خود را دوستان و اولیای خود قرار ندهید اگر کف را بر ایمان ترجیح دادند و کسانی از شما که آنان را دوست و ولی خود قرار دهند پس آنان ستمکارانند قل این كان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله و بَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِي فَبِلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ بگو اگر پدرانیت هن و فرزندانیت و برادرانیت هن با و, و خیاشاندانیت و انوالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد آن میترسید و خانهایی هایی که به داندل خوش هستید در نزد شما از خدا و پیام برش و جهاد در راه او محبوب تر است پس منتظر باشید تا خداوند فرمان عذاب خیش را بیاورد و خداوند گروه نافرمان را هدایت نمی کند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 و علیکم الارض بی ما رحبتتم و راستی خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد و پیروزی بخشید و در روز هنین نیز یاری کرد آنگاه که فزونی جمعیتتان شما را شگفت آورده بود پس سودی به حالتان نداشت و زمین با همه فراخی و وسعتش بر شما تنگ آمد و سپس پشت نمود فرار کردید ثم انزل الله سکینتهو على رسوله وعلى على المؤمنین و جنودا لم تروها وعذب الذین و جزاء الكافرين. آنگاه خداوند آرامش خود را بر پیام برش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکریانی فرستاد که شما آنها را نمی دیدید و کسانی که کافر شدند عذاب و مجازاد کرد و این است کیفر کافران ثم يتوب الله من بعد ذلك علی من یشاء والله غفور رحیم سپس خداوند بعد از آن توبهٔ هر كس را بخواهد میپذیرد و خداوند آمرزنده مهربان است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 وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اي کسانی که ایمان آوردید بی گمان مشکان پلیدند پس نباید بعد از امسال به مسجد الحرام نزدیک شوند و اگر از فقر می ترسید پس هرگاه خدا بخواهد شما را از فضل خود بی نیازتان می سازد. بی گمان خداوند دانای حکیم است.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 ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز قیامت ایمان دارند و نه آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام میدانند. و ندین حق را میپذیرند به جنگید تا زمانی که با ذلت و خاری به دست خیش جزیه بدهند وقالت قالت اليهود عزیرون ابن الله و قالت النصار المسیح ابن الله ذلك قولهم بی ی اون قول الذین كفروا من قبل قاتلهم الله ان ما و یهود گفتند عزر پسر خداست و نصار گفتند مسیح پسر خداست این سخنی است که با زبانهایشان میگویند مشابهت میکنند سخن کسانی که پیش از این کافر بودند خدا آنها را بکشد چگونه از حق منحرف میشوند اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم وما امر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 و همچنین این مسیح پسر مریم را معبودانی به جای الله گرفتند در حالی که دستور نداشتند جز خداوند یکتایی را که هیچ معبودی جز او نیست بپرستند او پاک و منزه است از آنچه شریک او قرار میدهند. یریدون أن یطفئوا نور الله بأفواههم ویأبى الله إلا أن یتم نوره ولو كره الكافرون آنها میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و خداوند با میکند مگر اینکه نورش را کامل و تمام کند، اگرچه کافران کراهت داشته باشند. هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق پرستاد تا آن را بر همه دینها غالب گرداند اگرچه مشکان کراحت داشته باشند. یا أيها الذين آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان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 ای کسانی که ایمان آبرده بیگمان بسیاری از احبار و رحبان اموال مردم را به باطل می خورند و دیگران را از راه خدا باز میدارند و کسانی که طلا و نقره را می و در راه خدا انفاق نمی کنند پس آنها را به عذابی دردناک بشارده یوم یحما علیها في نار جهنم ن فتو کوبیجیبه هم وجنو به هم وظومه مکن دملی فسیکن فوق مک توم تکننیزون روزی آن را در آتش جهنم گرم کنند پس با آن پیشانیهایشان و پهلوهایشان و پشتهایشان را داغ کنند و به آنها گفته شود این همان چیزی است که برای خود اندوختید پس بچشید تعم آنچه را می اندوختید این الشهور عند الله اثنى عشر شهران فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعت حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهم أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة و اعلمو ان الله من المتق بی گمان تعداد ماه ها خداوند در کتاب خدا از آن روز که آسمانها و زمین را آفرید دوازده ماه است که چهار ماه از آن ماه حرام است این دین ثابت و درست الهی است پس در این ماهها به خود ستم نکنید. و دست جمعی با مشکان بجنگید همان گونه که آنها دست جمعی با شما میجنگند و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است این من نسی عضادتونکو.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 والله لا يمد القوم الكافرين همانا به تأخیر ابکندن و جابجایی های حرام ابزونی در کفر است کسانی که کافر شدند با آن گمراه میشوند یک سال آن را حلال و یک سال دیگر آن را حرام میکنند تا مطابق با تعداد هایی شود که خداوند تحریم کرده است پس آنکه را که خدا حرام کرده حلال می اعمال زشتشان در نظرشان آراسته شده است و خداوند گروه کافران را هدایت نمیکند. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرات الا قلیل ای کسانی که ایمان آورده اید شما را چه شده هنگامی که به شما گفته می شود به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید به زمین می چسبید و می کنید آیا به جای آخرت به زندگی دنیا راضی شده اید حال آنکه متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی هیچ نیست اِلَّا تَنْفِرُوا فير يعذبکم عذابا الیما ويستبدل قوما وَلَا ولا تضروه شیئا والله على كل شیء قدیر اگر برای جهاد کوچ نکنید خداوند شما را به عذاب دردناکی عذاب میکند و قوم دیگری را به جای شما قرار میدهد و هیچ زیانی به او نمی رسانید و خداوند بر هر چیزی تواناست الا تنصروه فقد نَصَرَهُ الله اذ اخرجه الَّذِينَ كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معناه فانزل الله سكينه عليه وانيده بجنود لم ترونها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم اجر به که خداوند او را یاری کرد آنگاه که کافران او را از مکه بیرون کردند نفر دوم از دو نفری که آن دو در غار بودند به یار خود ابو بکر می گفت اندوهگین مباش یقینا خدا با ماست پس خداوند آرامش خود را بر او فرو فرستاد و با لشکرهایی که شما آن را نمیدیدید او را تایید و تقویت نمود و کلام کسانی که کافر شدند پایین قرار داد و کلام و آیین خدا بالا و پیروز است و خداوند پیروزمند و حکیم است انفر خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبیل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون سبكبر و با بار همگی برای جهاد کوچ کنید و با اموالتان و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید، این برای شما بهتر است اگر بدانید. لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لست بعوک بعدت علیهم الشفقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم یهلکون انفسهم یهلکون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون اگر متاعی نزدیک و دست یافتنی بود و سفری آسان و نزدیک در پیش بود البته از تو پیروی می کردند، ولی که مسافت راه تبوک بر آنها دور است، و به زودی به خدا سوگند یاد می کنند که اگر توانایی داشتیم، البته همراه شما بیرون می شدیم. آنها با این کارها خود را حلاک میکنند و خداوند می داند که آنها دروغگو هستند، عفا الله عن کلم اذنت لهم حتی یتبین لك لذین صدقوا وتعلم تعلم الكاذبین ای پیامبر خدا تو را ببخشاید چرا به آنها اجازه دادی پیش از آنکه راستگویان گویان بر تو آشکار شوند و دروغ گویان را بشناسی لا يستأذن کالذین يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليمون بالمتقین کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان دارند هیچگاه برای ترک جهاد طأ اموالشان و جانهایشان از تو اجازه نمیخواهند و خداوند نسبت به پرهیزگاران داناست اینما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر و ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم تنها کسانی از تو اجازه می‌خواهند که به خدا و روز آخرت ایمان ندارند و دلهایشان گرفتار شک و آنها در شک و تردید خود سرگردانند ولو اراد الخروج لعد له عده ولكن كرها الله بعافهم و اگر آنها میخواستند که همراه شما بیرون شوند ساز و برگی برای آن آماده میکردند ولیکن خداوند از حرکت آنها کراحت داشت لذا آنها را از حرکت باز داشت و به آنان گفته شد بانشستگان بنشینید لو خرجوا فيكم ماذاادوكم الا خبالا ولا اوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم ثم ماعون لهم والله عليم بالظالمين اگر انها همراه راح شما بيرون ميامدان جز فساد و تباهی چیزی بر شما نمی و به سرعت در میان شما فتن انگیزی می کردند و در میان شما افرادی هستند که به سخنان آنها گوش فرامی میدهند و خداوند نسبت به ستمکاران داناست لقدی بتغول فتنه تمین قبل و قلبو لکل جاء الحق وظهر الله, الله و هم کارهون براستی که آنها پیش از این نیز فتنگری می کردند و کارها را برای تو دگرگون کردند تا آنکه حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار شد و شما پیروز شدید در حالی که آنها کراحت داشتند و من من یقول ولا تفتنی فی الفتنت سقطو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ بعضی از آنها ها میگویند در ترک جهاد به من اجازه بده و مرا به فتنه و گناه نیافکن آگاه باشید که آنها در فتنه افتاده اند و بیگمان جهنم کافران را احاطه کرده است إن تصبك حسنة وإن تصبك قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون به برسد آنها را ناراحت می کند، و اگر مصیبتی به تو رسد میگویند ما پیش از این چاری کار خود را اندیشیده ایم و شادمانه باز میگردند قل ای یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بگو هرگز مصیبتی به ما نرسد جز آنچه چه خداوند برای ما نوشته است او مولای ماست ما و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند قل هل تربصون بنا احد ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون آیا برای ما جز یکی از دونیکی را انتظار دارید و ما برای شما انتظار داریم که خداوند عذابی از نزد خودش به شما برساند یا به دست ما شما را مجازات کند پس شما انتظار بکشید بیگمان ما نیز با شما انتظار میکشیم. قل انفقو طوعاً او کرها لن یتقبل من انكم کنتم قوما بگو انفاق کنید چه از روی میل باشد یا به با اکراه هرگز از شما پذیرفته نخواهد شد زیرا شما مردمی فاسق و نافرمان هستید و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أن هم بالله و برسوله و لا یعتون الصلاة الا وهم هم کسالا و لا ينفقون الا وهم کارهون چیز مانع قبول انفاق های آنها نشد مگر آنکه به خدا و پیام برش کافر شدند و جز با کسالت برای نماز حاضر نمی شوند و با کراحت انفاق نمی کنند فلا تعجب کأموالهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في و انفسهم و هم پس اموالشان و اولادشان را گفت زده نکند زیرا خداوند میخواهد به وسیله آن آنها را در زندگی دنیا عذاب کند و در حالی که کافرند جانشان براید وَيَحْلِفُونَ بالله اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وما هم منكم ولكنهم قوم یفرقون. و آنها به خدا سوگند یاد می کنند که از شما هستند در حالی که از شما نیستند ولیکن آنها گروهیند که می لو یجدون ملجعا او مغارات او مدخلا لولو ایلیه و هم یجمحون اگر پناهگاه یا غارها یا تونلی در زیر زمین بیابند شتابان به سوی آن می گریزند. و من هم من یلمزو که الصدقات فا اعطوا منها رضو و این لم منها اذا هم یسخطون و از آنها کسانی هستند که در صدقات و غنایم به تو خورده میگیرند پس اگر از آن اموال بهری به آنها داده شود راضی می شوند. و اگر از آن چیزی داده نشود فوراً خشم می‌گیرند ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله اگر به آنچه خدا و رسولش به آنها داده است راضی باشند و بگویند: خداوند برای ما کافی است، به زودی خدا و رسولش از فضل خود به ما عطا میفرمایند، ما تنها به سوی خدا رغبت میوریم، برای آنها بهتر بود.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 و الله علیم الحکیم. صدقات و زکات ها مخصوص فقرا و مساکین و کار گزاران آن و دلجویی شدگان و برای آزاد کردن بردگان و ادای وام بدهکاران و در راه خدا و به راه ماندگان است این فریزه ای مقرر شده از جانب خداست و خداوند دانای حکیم است وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلِ الْأُذُنُ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ و از آنها کسانی هستند که پیام بر را آزار می و میگویند گوش و باور است بگو برای شما گوش نیکیست به خدا ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق میکند. و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آورده اند و کسانی که رسول خدا را آزار میدهند برایشان عذاب دردناکیست یلیفون <تصفيق> و و ان يرضوه كانوا منافقان برای شما به خدا سوگند یاد می کنند تا شما را خشنود سازند در حالی که اگر ایمان داشتند شایسته تر این است که خدا و رسولش را خشنود سازند الم آیا من له نار جهنم نمیدانند بیگمان هر کس با خدا و رسولش مخالفت کند پس مسلما برای او آتش جهنم است جاودانه دوران خواهد بود این همان روز فایی بزرگ است. يحذروا المنافقون أن تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحذرون منافقان میترسند که مبادا سوره ای بر علیه آنان نازل شود و به آنها از آنچه درون دلهایشان است آگاه سازد بگو استهزا کنید بیگمان خداوند آنچه را که از آن میترسید آشکار میسازد و لئن سألتهم ان سالتهم یقولن انما ما و ونلعب قل ابالله و آیاته و رسولهی کنتم تستهزئون ای پیامبر اگر از آنها بپرسید چرا چنین کرده اید گویند ما حرف می زدیم شوخی و بازی می کردیم بگو آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره می کردید لا تَعْتَلِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ اِن نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبَ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اوضن oh, یا راستی که شما پس از ایمان آوردنتان کافر شده اید، اگر گروهی از شما را به خاطر توبه ببخشیم، گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد، زیرا که مجرم بودند. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و عن المعروف و یقبضون نسوا الله فنسیهم این المنافقین هم الفاسقون مردان منافق و زنان منافق همه همانند هم و به کارهای زشت فرمان میدهند و از نیکی باز میدارند و دستهایشان را از بخشش میبندند خدا را فراموش کردند. پس خدا نیز آنها را فراموش کرد، بیگمان منافع آن همان فاسقان هستند. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم خداوند به مردان منافق و زنان منافق و کفار بعد آتش جهنم داده است در آن خواهند ماند همان برای آنها کافی است و خدا آنها را لعنت کرده است و برای آنها عذاب همیشه گیست کالذین من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة و هم الخاسرون شما منافقان همانند کسانی که پیش از شما بودند هستید بلکه آنها از شما نیرومندتر و انبال و فرزندانشان بیشتر بود آنها از نصیب خود بهرهمند شدند پس شما نیز از نصیب خود بهرهمند شده اید همچنان که کسانی که پیش از شما بوده اند از نصیب خیش بهرمند شده بودند و شما در سخنان ناپسند فرو رفتید همان گونه که آنها فرو رفتند آنان اعمالشان در دنیا و آخرت نابود شد و آنان همان زیانکارانند الم یأتیم نبع الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و مدين والمؤتفيكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله انفسهم آیا خبر کسانی که پیش از آنها بودند چون قوم نوح و آد و سمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهاي زیر و رو شده قوم لوت به آنها نرسیده است که پيامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند ولی نپذیرفتند پس خداوند به آنها ستم نکرد ولیکن کن خودشان برخیشتن ستم میکردند و المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم و مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان یکدیگرند، امره به معروف و نهی از منکر می کنند و نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و پیام برش را اطاعت می کنند اینانند که خداوند به زودی آنها را مورد رحمت قرار می دهد بیگمان خداوند پیروزمند و حکیم است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 ذلك هو الفوز العظيم. خداوند به مردان مؤمن و زنان مؤمن های از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختان آنجاری است در آن خواهند ماند و نیز خانه های در بهشت های جاوید نصیبشان فرموده و خوشنودی خداوند از همه اینها برتر است این همان کامیاب یه بزرگی است. آیا یم نبی جاهد الكفّار والمنافقين وظلّ عليهم ومؤهم جهنم وبيت المصير. ای پیامبر. با کافران و منافقان جهاد کن و برانان سخت بگیر و جایگاهشان جهنم است و چه بد سرانجامی است یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهم بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة و ما لهم فی الارض من ولي نصير منافقان به خدا سوگند یاد می کنند که سخنان نادرست نگفته اند و راستی که سخن کفر گفته اند و پس از اسلام آوردنشان کافر شده اند و قصد چیزی خطرناک کردند که به آن نرسیدند تنها به این سبب عیب جویی می که خدا و رسولش آنها را از فضل خود بینیاز کردند پس اگر توبه کنند برای آنها بهتر است و اگر روی بگردانند خداوند آنها را در دنیا و آخرت با عذابی دردناک عذابشان می و در روی زمین هیچ کار ساز و یاوری نخواهند داشت و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالفین بعضی از آنها با خدا عهد و پیمان بستند که اگر خداوند از فضل خود نصیبی به ما دهد که ان صدقه و زکات خواهیم داد و از نیکوکاران خواهیم بود فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا وهم معرضون پس چون خداوند از فضل خود به آنها نصیبی بخشید به آن بخل ورزیدند و ایراز کنان روي گرداندند و سرپیچی کردند. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا بما أخلف الله ما و بما كانوا يكذبون پس این عمل نفاق را تا روزی که او را ملاقات کنند در دلهایشان برقرار ساخت به سبب آنچه که با خدا وعده کرده بودند خلاف نمودند و عهد شکنی کردند و به سبب آنکه دروغ می گفتند ألم انالله یعلم سرهم و نجواهم و انالله علام الغیوب. آیا که خداوند اسرارشان و سخنان در گوشیشان را میداند و بیگمان خداوند دانای غیب هاست. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم فخّر الله منهم ولهم عذاب اليم کسانی که از مؤمنان رغبت کننده در صدقات عیب جویی می کنند و کسانی را که جز به اندازی توانایی خود چیزی نمیابند پس عیب جویی و مسخرشان می کنند، خداوند آنها را مسخره می کند و برای آنها عذاب دردناکی است. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم ذلك انهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ای پیامبر، برای آنها آمرزش بخواه یا برایشان آمرزش نخواه، اگر هفتاد بار برای آنها آمرزش بخواهی، هرگز خداوند آنها را نمی آمرزد، این بدان سبب است که آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند و خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند،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 قلنا نَارُ جَهَنَّمَ اشد حرا لو كانوا يفقهون. و پس ماندگان از غزوه تبوک از نشستن خود بعد از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند و کراحت داشتند که با انوال خود و جانهای خود در راه خدا جهاد کنند و به یکدیگر گفتند در این گرما برای جهاد بیرون نروید. ای پیامبر، به آنان بگو، آتش جهنم از این گرم تر است اگر در میافتند فالیضحکوا قلیلاً و الیبکوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون پس آنها باید کمتر بخندند و بسیار گریه کنند این جزای آنچه که انجام می دادند. فا این رجع کالله الى قائفت منهم فاستأذنو للخروج فقل لن تخرجو. فقل لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا اینکم رضیتون بالقعود اول مرت فقعدو مع الخالفین پس اگر خداوند تو را به سوی گروهی از آنها بازگرداند و از تو اجازه خروج خواستند پس بگو هرگز با من خارج نخواهید شد و هرگز همراه من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید زیرا شمان خستین بار بنشستن و کنارگیری راضی شدید پس با پسماندگان بمانید علی ما تابدوا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون و هرگز بر هیچ یک از آنها که مرده است نماز نخوان و بر کنار قبرش نایست بیگمان آنها به خدا و رسولش کافر شدند وَدَرَ فِي حَالِ كَفَاسِقٍ وَنَافِرٍ بُودَند وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَذْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَتَذْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ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 ینزل سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استذنك اول الطول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين بهنگامی که سوره این نازل شود که به خدا ایمان آورید و همراه پیامبرش جهاد کنید توانگرانشان از تو اجازه میخواهند و گویند بگذار ما با خانه نشینان باشیم رضو بی این مع الخالف و طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آنها راضی شدند که بازنان و بازماندگان باشند و بر دلهایشان مهر زده شد پس آنان چیزی نمی فهمند الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بی اموالهم و انفسهم و لهم دیکن پیام بر و کسانی که با او ایمان آوردند، با انوال خود و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند، نیکیها همه از آن آنهاست و آنانند که رستگارانند. اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها،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 و جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد قعد الذین کذبوا الله ورسوله رسوله فیصیبوا الذین کفروا منهم عذاب أليم و اوزر از اعراب آمدند تا بی آنها اجازه داده شود و کسانی که به خدا و رسولش دروغ گفته بودند در خانه نشستند به زودی به کسانی از آنها که کافر شدند عذاب دردناکی خواهد رسید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 بر ناتوانان گناهی نیست و نه بر بیماران و نه بر کسانی که چیزی نمیابند خرچ کنند گناهی است. هرگاه برای خدا و پیام برش خیر خواهی کنند بر نیکوکاران هیچ راه سرزنش نیست و خداوند آمرزنده مهربان است ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا, تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا لا يجدوا ما ينفقون و نه کسانی که وقتی نزد تو آمدند که آنها را بر مرکبی سوار کنی گفتی، چیزی که شما را بر آن سوار کنم نمیابم، آنها باز گشتند در حالی که از اندوه چشمانشان اشک ریزان بود، چرا که هیچ چیزی برای انفاق نیافتند، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغمياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالث وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون تنها راه سرزنش بر كسانی باز است که از تو اجازه میخواهند در حالی که توانگرند، آنها راضی شدند که زنان و بازماندگان باشند و خداوند بر دلهایشان مهر نهاده است، پس آنان چیزی نمی دانند.